گفتگویی داریم با آقای علی آزاد فعال سیاسی در کوپنهاگ یکی از مسئولین کتابخانه پوینده و همینطور سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک. سلام و صدب خیر میگم خدمت شما آقای علی آزاد سلام به شما و شنبندگان شما رادیو در آوس. از اعتراضات مردم مبارز ایران در آبان 98 شروع می کنیم که گفته میشه در اکثر شهرهای ایران مردم علیه حکومت استبداد مذهبی به پا خواستن و متاسفانه حکومت دیکتاتوری به جای پاسخ به خواستایی به حق مردم معترض با سرکوب شدید پاسخ داده شده شما نسبت به این حوادث خونین آبان 98 چه نظری دارید؟ بله شما به درست اشاره کردید در رسلا ماه آبان ما نیمه دوم ماه آبان ما اعتراضات شدیدی در ایران علیه فقر، فساد فحشا و دیکتاتوری حاکم و به خصوص مسئله به وجود فقر گسترده در حاشیه شراب و نابرابرایی که در جامعه شکل وحشتناکی به خودشون نمودار میکنه سبب خشم به فروخفته مردم بوده که از سالهای قبل انباشته شده بوده ولی خب این بار به شکل سراسریتر و به شکل به جدیتر و با خواسته ها مطالبات روشندتر به میدان اومدن که در صورت همه شما و شنوندگان و مردمی که دور و نزدیک خبرهای ایران دنبال میکنن در جریان هستند. منطقه مسئله بر سر این هست که برای ماها که سالهای سال به قول معروف این برخورد رژیم و از ابتدای حکومت رسیدن اون حتی ورای قبل از اینکه اینا به حکومیت برسم تجربه کردیم خب یه چیز عجیبی رو نبود یعنی شما نگاه بکنید اولین سال به قدرت رسیدن حکومت ایران هم حکومت جمهوری اسلامی ایران بهاری که به عنوان عید نوروز بوده رو به خون کشیده به خاطر اینکه چی کارگران بیکاری رو که جلوی وزارت کار بایستدن و پلب کار برگشت کار خودشون می کرده، حقوق خودشون رو میخواستن و به رگبار وستن یعنی تقریبا چند ماه بعد از به حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی از اون روز تا امروز همچنان جمهوری اسلامی برای سرکوب خواستای مردم به خشونت متوصل شده این خشونت در ابعاد مختلف بوده خوشونت فقط این نبوده که بگیر و بزن و بکشه. خوشونت در شکل قانون خودشو تبلور داد بیشتر از هر چیزی. رژیمی که خودشو به عنوان مستشعف بیام میکرد. رژیمی که قول داده بوده که به شلا بتونه عدالت اجتماعی به وجود بیاره. رژیمی که منتقد خودشو دیکتاتوری و نظام تکهزبی و نظام پادشایی میدونست. خودشو به عنوان... در قدرت و تمامی قدرت در دست یک دیکتاتور به نام خمینیز خلاصه کرده و تمامی اون چیزی رو که به عنوان آرمانهای انقلاب بوده آرزوهای انقلاب مردم بوده رو چی کرده قانونی که توی بسطلا رابطه کار و کارگر رو به شکل روشن مطرح کرده که مثل مردداری بوده. یعنی هر کسی به هر شکلی که میخواد میتونه استثمار بکنه و هیچ حد و حصلی رو نداشت. نزدیک 15 سال از عمر جمهوری اسلامی گذاشته بوده که چی؟ تمیشه یه قانونی شرحم بکنه به عنوان قانون کار رو اعلام بکنه در صورتی که برای مجازات برای قرض کنید برای پوشش برای غذا خوردن برای روزه گرفتن نگرفتن همون دو سال اول چی قانون تأیید کرد یعنی بزرگترین چیزی رو که برای طبقه کارگر برای مردم جامعه بوده ده 10 سال این دستون دست کرده سال وقتی که جنبشارو سرکوب کرد نمایندای کارگرانا دستگیر کرد به فوادین کارگراییزا اعدام کرده و دست بختی را ارائه داده که هر سال باز, باز از روی اون داشت و تا آخرین جایی که الان نزدیک 99 درصد از کارگران ایران کارگرانی هستند که با چک سفید یا قرارداد سفید استخدام میشن در واقع استخدامی در کار نیست هر 75 روز باید رو امضا بکنم و یه قرارداد جدیدی رو به قول معروف بنویسم و توی این مدت دو ماه یا دو ماه, دو ماه بار دیگه شبیه یه جور بایستی تصفیه حساب بکنم با اونها و آورگردان مبارز آدم‌های موترز اینا رو دوباره استفاده نکنن به اخراجشون بکنه شرایط بسیار بدو رو به بار آوردن خب طبیعتا همه میدونن که الان در ایران مسئله نه رابطه کارگر با کارفرما بلکه رابطه بردهداری ها اون هم بزرگترین بردهدارش دولت هست و نهادهای وابسته به دولت مثل قرارگاه خاتمه الانبیا و نمیدونم بنیاد خیبر بنیاد انواع اقسام دوزگاهی که چی به اسمای مختلف آرم و مارک مذهبی از قبیل بنیاد عبالفز و بنیاد مهدی بنیاد الهادی انواع اقسام اینها رو به وجود و و تحت پوشش این زندگی مشقتباری را بر مردم تعمیل کردند صفرهای خالی مردم هر روز خالی تر کردند و شرایطی که امروز دیگر هیچ چیزی جوابگوی نیاز ابتدایی مردم نیست حتی نیاز مسکن مردم برآورده نمیکنه با این وجود حتی بخش وشی است طبقه کارگر هستن که مزدشون رو به شکل منظم دریافت نمی‌کنن حتی حداقل به عنوان گروگان در دست می‌گیرن هرگز اینو به شکل درست پرداخت نشده به خصوص توی صنایع بزرگی مثل فولاد برای صنایع بزرگی مثل لیکاترفقه همه این جو با این مشکلات درگیر بودن که قبل از این بهمن ما، قبل از آبان ماه خودشو بروز میداد یعنی از تابستان سال گذشته بوده که کارگران میشه تر افتخ پر معترض بودند دستگیر شدند روانه زندان شدند شکنجه شدند فولاد همین جور توی عراق ماشین عراق همین جور توی شرکت نفت همین جور توی شهرداری همینگه تمامین بخش ها به حالت به اسطلاح انفجار رسیده بود و دولت خودش هم بارها اعلام کردند که ما از قبل میدونستیم که یک دریجه در از انفجار میرسه خودشون آماده کرده بودن برای در نتیجه وقتی که بنزین مطرح شد بنزین یه چیزی بود دیگه فقط و فقط علیه طبقه کارگر و زحمتکشان نبوده بلکه بخش وشی از مردم رو البته اصلاً تحت تشریف قرار میده کالایی هست که با افزایش اون متناسب با همون با توی بازار روی قیمت‌های دیگه تأثیر میذاره در نتیجه به شکل به سلا باور نکردنی برای مردم این یک بار سه برابر شده و طبیعتاً بایستی انتظار این رو که کالاها ها و اجناس ضروری هم برون بشه که تهمی شد و در نتیجه خب طبیعه که مردم چیزی رو برای بیشتر از دست دادن نداشتن یعنی جان خودشون رو کف دست خودشون گرفتن و اومدن تو خیابون بیشتر در شهرهای فقیر و در حاشیه شهرها بیشتر به اصطلاح فقیر و کم درآمد جامعه بودن که به این مساله اعتراض داشتن طبیعتاً این فقط اعتراضه طبقه کارگر و محرومی نبوده بلکه بخشای وسیع از جامعه بوده حتی بخشایی از وسیع از جامعه که از ذر اقتصادی ممکن بوده که در وضعیت معیشتی طبقه کارگر و محرومی نبودن اما از ذر سیاسی تحت فشار هستن آزادی شخصی زیر سآل هست همه اینا سبب یک انفجار شد که به چشم دیدیم به خودشونم اعلام کردن بارها گفتن این از جنگ عراق بیشتر بوده این از عملیات مرساد و فلان و فلان بدتر بوده این جنگ جهانی بوده انواع اخسام این مسئله مطرح کردن متاسفانه باید بگیم که چی تعداد وسیع کشته شدن که هنوز نه آماری رو ازش بسیار خبر دارن نه اطلاعی رو دارن مهمتر از همه این هست که بخش از دستیر شدگان هستن که کسی نمیدونه طبیعی هست که توی یک محل اگر کسی کشته شده مردم میفهمن و اطلاع میدن ولی کسی که از فرض کنید از زاهدان بلند شده اومده توی تهران توی روبات کریم داره کار میکنه کشته شده کسی نمیدونه این کجا هست کی بود کجا رفت؟ که دستیز کرده در نتیجه این مسئله دستیز شدگان به عنوان مفقود اثر انبارۀ مسائل مطرح کردن همون جوری که در زمان به صلاح قیام انقلاب سال 57 هم همین شد بخش وسیعی از مردم به مفخود مفقود الاسر برای همیشه مفقود الاثر شدند خب نه جنازه‌ای برایشون پیدا شده نه کشی اینا رو به رسمیت شناخت شده که کشته شدن نه کشی میدونه کجا رفتن در وان کسانی که چی سر بنیش شدن در نتیجه این موضوع هست این موضوع کلیدی هست و این مشکلی رو که به وجود اومده مشکلی نیست که بشه با سرکوب و با خفقان و با بگیر و ببند مهارش کرد دیر یا زود با جهش بیشتر و عظیمتر نه تنها این دفعه نهادهای های به وحشت و نهادهای سرکوب سرکوبگر و نهات مالی رژیم رو بعد نظر داره بلکه تمامی ارکان های این رژیم رو به چالش میکشه و به یک نبرد و روی روی به صلاح امیختر و بدل میشه که امیدواریم به اعتصاب عمومی تبدیل بشه و هزینه ها رو کاهش بده و مردم بتونن از طریق اعتصاب عمومی رژیم رو فلنج بکنن و رژیم رو سرنگون بکنن در رابطه با اعتراضات مردم مبارزه ایران در همین ماه گذشته و همینطور اعتراضاتی که در کشور همسایه ایران اراق صورت گرفته و هنوز هم ادامه داره تظاهرات خونینی هم در کشور همسایه ایران اراق به خصوص در شهرهای مرکزی بغداد اینا هنوز کشت کشتار میشه تظاهرات مشترکیش در شهر کپنای از جانب کانون زندانیان کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران و کتابخانه پوینده برگزار میکنه و شرکت مستقیم داره میخواستم راجع به این مسئله تظاهرات روز دوشنبه 16 دسامبر ساعت پنج بعد از ظهر که در مرکز کپنهاگ برگزار میشه آدرسش هم است گملتو روبروی امнести اینترنشنال هست میخواستم راجب این توضیح بیشتری بدین که چطور شد که شما این تظاهرات مشترک با های حقوق بشری یا های دانمارکی و سازمانهایی که وابسته به مردم عراق هستند در کپنهاگ برگزار کردید. بله ما همون شما نگاه بکنید توی تظاهرات های مختلفی توی ایران مسئله این که چی پول و سرمایه ایران در کشورهای دیگه به کار گرفته میشه و این سرمایه نه برای رفاه مردم بلکه برای مزدوران و به قول معروف جیزخاران رژیم هستند که چی اینها رو مسلح کردند و به جان مردم انداختن اعتراضات به شکل گسترده در ایران تبلبر پیدا کرده حالا با شعارهای مثل نه غز نه لبنان نمی اینا بس به بقول ناقص این بیان شده اما به شکل واقعیش همین هست که چی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر دخالت غری و گسترده ای رو داره ملیشای مختلفی رو درست کرده بشیز درست کرده و ارگانهای سرکوبی رو به وجود که سبب بیشباتی و سبب درگیری و سبب جنگ های مذهبی و فرقه ای و همه این کشورهایی که رد پای جمهوری اسلامی بوده به خرابی و در تلی از خاک بدل شد به سوریه نگاه بکنید، به اراغ نگاه بکنید، به افغانستان نگاه بکنید، به یمن نگاه بکنید، هر جایی که این جماعت وحشی، جماعت آدمکش، جماعت جنگ افروز و جنگ بودن، با جماعتی از وحشی مثل خودشون مسلح کردن به جان مردم انداختن. در تابستان امسال گذشته اعتراضات وسیع در عراق شروع شد و این اعتراضات نکه این اعتراضات به سمت جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه جریان هشت و شعبی که جمهوری اسلامی بهم بسیج اونجا متشکل کرده و همه این کسانی هستند که مستقیما مزد میگیرن، پول میگیرن. و تمامی سیاست‌هاشون بنا به اسنادایی که پیش چند هفته پیش منتشر شده همه این اسنادها و خبرها و همه اینها دست به شورای امنیت ملی ایران فرستاده میشه و از دستوراتشون از شورای امنیت ملی ایران می‌گیرن اسنادی که الان منتشر شده و به شکل وسیع هم پخش شده همه اینا نشون دهنده ای این بوده که مردم به درستی عراق و نشانه گرفتن که جمهوری اسلامی و مزدوران اون هستن که اون لباس شخصی از بالای پشت بوم فلیپر پشت پنجره ها به شکل رو به رو درگیر هستند همین درگیری به شکلی هست که به حزب در لبنان علیه مردم معترض لبنان بلند شدن اعتراض کردند علیه این سیاست های دزدی و هرزگی و فساد و فحشایی که اینا به باب کردند معترض هستند در نتیجه این مسئله وقتی که انفجار تو ایران صورت گرفته و مردم به خیابان بیشتند و این انفجار اجتماعی به نوی دی بوده برای اون مردمی که تحت سلطه جمهوری اسلامی هستن به شکل مستعمره جمهوری اسلامی در اومده نکاش پیدا کرده همون روز اونها توی میدان التحریر عراق اعلام همبشتگی کردن با جنبه ایران با راژی های مختلف خبرگزاری فرانسه خبرگزاری های معتبر بین المللی اعلام همبستگی کردند و ما در بیشتشتی شمه به ماه گذشته نوامبر تزاراتی که داشتیم پیام همبستگی اونها رو قراعات کردیم ما اعلام همبستگی کردیم با اون مردم و توی های بعدی که ما توی مرکز شهر داشتیم دیدیم که چی بسیاری از مردم عراق بسیاری از کسانی که چیز بودند، ما رو در آغوش می‌گرفتن به ما به قول معروف تسلیت میگفتن و خودشونو در غم کشته شدگان شریک می‌دونستان و اعلام کردند که چی ما مثل شما هستیم و روزانه نیست که چی تعدادی از جنازه و توفیابون ها ما ها پیدا نکنیم که با غرور نبندند در نتیجه همه اینها نشون داده که ما هم دوستیم دشمن مشترک داریم و درد مشترکی رو داریم به همین خاطر در اولین فراخانی رو که نه فقط از جانب ما بلکه کلیه جریانات چپ بودند که به این مسئله نشون داده بودند اومدم با اونا تماس گرفتیم و چهارشنبه هفته قبل یه جلسه مشترکی رو برگزار کرده بودیم که توی اون چهار گریان به صلاح عراقی شرکت کردند و مشترکن گفتیم که چی ما رفت سازرات مشترک برگزار میکنین که بگیم ما مردمی هستیم که درد مشترکی داریم و دشمن مشترکی داریم و بایستی تلاش بکنیم که هم ایران هم به اصطلاح عراق و هم کشورهای دیگر جمله آخرین لایحات تعدادی از تشکل های لبنانی بودن که اومدن تقا متاسفانه ما دیگه همش یه سازماندهی شده بوده دتوش میکن ما در کنار ما هستن و این جنبش ادامه داره ولی روز دوشنبه این تزارات مشترک ما هست که از طریق به چند نهاد سیاشی و مدنی دامارک با هم بیه مشترک می برگزار میکنی. به شکل ای هست که کمیته برگزاری این تزارات هست که شامل دوازده تشکیلات هستن که شاید فرصت این نباشه من همه اینا رو بگم غیر از دو تشکیلات ما تشکیلات این لیست هست به اضافه تشکیلات به صلاح عراقی هایی که هستن یک تشکیلات مدافع حقوق زنان هست که سکلار هستن یک تشکیلات هست که به صلاح در رابطه با مسائل دموکراسی و آزادی بیان و عدیشو اینها تلاش میکنن ستا حضب سیاسی عراقی هستن که به صلاح یکی به نام ارگانازیسیونی هست که آلترناتی به کمونیستی رو برای عراق داره که توی خود میدان التحریر چادر اینا دارم با ما مستقیما در ارتباط هستند و همینطور حزب کمونیست کارگری عراق هست و نهادهای مختلفی هستند که از عراق هستند به اضافه از ایران هم همینجور جلالانات مثل حزب کمونیست ایران هست و هستن که چپ هستند که توی شریک هستند. از طرف چیزای عذاب خارجی هم غیر از این هدلیس اینترنشنال سوسیالیست هستند دانشجویان سوسیالیست هستند مجموع دوازده تا تشکل هستند که از میان این دوازده تشکلی که هستند چند نهاد و تصف هستند که روز دوشنبه سخن رانی دارند الام هم بستگی می کنند از هست از طرف بسطلا فاولی اودولی این هدلیس هست. از طرف به صلا تقییف هست که بزرگترین اتحادی کارگری دامارک هست که نزدیک به سی هزار اوزو داره اونها میان برای این اعلام هم بستگی میکنن اش اف هست هزب سوسیالیست دامارک دا هست در دا شرکت میکنه بعد از یک تشکیلات دیگه ای هم هست که به صورت لانس فوینینگ هست کاربنده و کارگرانی که تو سوسیال کار میکنن ال اف بهش میگن. اون هست شرکت میکنه اینا سخندران هستن و یک نفر هم از طرف کمیته همین برگزار کننده تزارات هست که سخندرانی دارن در مجموع در این فرصت خیلی کم بخش وسیعی از این بخش وسیعی از تشکل‌ها، اِن‌جی‌اوها و تشکلات مردمی مثل اصول‌گرا و غیره حمایت کردند و ما امیدواریم که این تظارات روز دوشنبه در مرکز شهر کپناه روبروی دفتر امنستی هست جور که شما گفتید توی تو هست و امیدواریم که به سلام مردم بیان مشعل در دست میگیریم اکس عزیزانی از دست دادیم که ایران و عراق با همدیگه در کنار همدیگه بامیستیم و نشانه احترام به همه باختگانی که در ایران و عراق بر علیه دو نظام فاسد و دزد و غارتگر و مذهبی ارتجهایی دارن تلاش میکنن اعلام همبستگی میکنیم در عین حال این امکان نبوده که ما بتونیم با ایران ارتباط مستقیمی برقرر داشته باشیم و از بسلا کسانی کسانی که در ایران هستند مستقیما بیان چون از نظر امکان این نیست اما از میدان التحریر چی مستقیما بر... یعنی سایر که چی ارتباط برقرار بشه و یک سخنران از و دانشوای بغداد یا التحرير بغداد به اصطلاح برای مردم صحبت بکنه شرایطی رو اونجا و اعلام همبستگی بکنیم با همه جنبش‌هایی که برای آزادی، برابری و رهایی از ظلم و ستم و بیداد و استبداد در مبارزه می‌کنند، اعلام همبستگی بکنیم و درد استراتژی هستیم که همه ما باصیر یادمون مشترک بکنیم و علی اینها مبارزه بکنیم و ادامه بدیم و مشتردتر و وسیعتر اینو پیگیری بکنیم. خیلی ممنونم سپاسگزارم امیدوارم تظاهرات خوبی روز دوشنبه 16 دسامبر ساعت 5 بعد ظهر در مرکز کپنای تظاهرات خوبی داشته باشیم من همه از شما متشکرم که این وقت به ما دادید من امیدوارم که در اوس و در سایرای دیگر همین این فکس به صلا اعتراضات صورت بگیره و همه مردم همسرورش در مقابل دشمنان مشترک خودشون همدیگر و حمایت و پشتیبانی بکنن